افسان به نام خدای یگانی مهربان. سلام ای برادر قصه چون پیمان است معنی در وی بسان دانه است دانه معنی بگیرد مرد عقل ننگرد پیمانه را گرگشت نقل افسانه ها از جلوه های فرهنگ مردم که عمری همزاد آدمی داره افسانه ها قدیمی ترین میراث فرهنگی بشرن که با مطالعه اونها میشه درباره اندیشه، گفتار، باورها و لحظه های تلخ و شیرین مردمان سرزمین های مختلف اطلاعاتی رو کسب کرد در برنامه این هفته هزار افسان بسط داریم به سرزمین باستانی مردمان بختیاری سفر کنیم و ای را از گنجینه ادبیات آمیانی این مردمان با فرهنگ براتون نقل کنیم افسانه بیگ سور یا بزغاله سرخ به روایت از سرکال خانم صدیقه پور بهادر از شهرستان ایزه به نقل از کتاب افسانه های مردمان بختیاری به کوشش کتایون لیوچی روزی روزگاری در سرزمین کهان بختیاری پیرزنی تک و تنها زندگی میکرد. پیرزن فرزندی نداشت و سالهای سال در حسرت داشتن فرزند سوخت و ساخت پیرزن مال و منال زیادی داشت گله، رمه و باغات کدو و انار در یکی از روزا پیرزن سفرش رو پنگ کرد تا غذایی بخوره اما یه دفعه دلش گرفت و با آه ناله گفت ای خدا، ای خدا، الان سالهای ساله که من تک و تنها سر این سفره میشینم. ای کاش، ای کاش، بچه داشتم که با هم غذا میخود. خدایا، این منال من بلی کی میمونه؟ اگه فرزندی داشتم، دیگه هیچ غمی نداشتم. بل. پیرزان افسانه ای ما با خدای خودش حرف می زد و راز و نیاز می کرد در این موقع لنگه در باز شد و بزغالی سرخ با شاخهای کوچیک و چشمای اصلی و روشن وارد شد و در عرض چند ثانیه به دختری زیبا تبدیل شد و با صدای ظریفی گفت ای مادر قصه نخور من از امروز دختر تو هم. پیرزن که از ترس و ناباوری سر جاش خوش کش زده بود با لکنت زمان گفت تو تو تو تو کی هستی؟ دختر جواب داد من همون بزغاله سرخ توام که به ازن خدا آدم شدم تا آرزوی تو رو برآورده کنم حالا هم آمادم تا هر کاری داشته باشی برات انجام بدم میخوای خونه رو جارو بزنم؟ به باها سرکشی کنم یا به گوسفندا برسم ها پیر زن همچنان مات و مبهوت به دختر خیره شده بود دختر به اون نزدیک شده گفت مادر جان مگه تو از خدا فرزند نمیخواستی خب خدا هم بزغاله تو رو تبدیل به دختری کرد که الان جلوی روته پیرزن کم کم به حال طبیعی خودش برگشت و با خوشحالی دختر رو در آغوش کشید و گفت: ادا خدایا شکر چه دختر زیبا و قشنگی به من دادی. بعد قد و بالای دختر رو برانداز کرد و گفت: و مادر به قربون قد و بالات بره. به بیچاره تا سیر تماشات کنم. دختر خندید و به دور خودش چرخی پیرزن که دیگه غم و نداشت یه بار دیگه خدا رو به خاطر لطفی که در حقش داشته شکر کرد. فردای اون روز پیرزن مشک خالی آب رو برداشت و برای آوردن آب به طرف چشمه براه افتاد که یه دفعه دختر دوون دوون خودش رو به پیرزن رسوند و مشک رو از پیرزن گرفت و گفت ماده مگه من مردم که تو بری سری چشم آب پیری ها؟ دیگه این کارا بر احتیم منه به بعد مشک رو بر دوش گذاشت و به طرف چشمه روانه شد اما به محض خروج از خونه دوباره به همون بزغالی سر تبلیش شد وقتی به چشمه آب رسید بعد از کمی تحمل از جلد بزغاله بیرون اومد و تبدیل به همون دختر زیبا شد دختر مشک رو پر از آب کرد و قبل از رفتن به خونه به اطراف نگاهی انداخت و با خودش گفت حالا که کسی این طرفو نیست یه کمی استراحت کنم و آبی به سر صورتم بزنم دختر انگوشترهای دستش رو درآورد. آبی به سر صورتش زد و چند دقیقه بعد از خستگی خوابش بود اتفاقا پسر پادشاه در اون حوالی به گشت و گذار و از سواری مشغول بود چند گله همراه با چوپوناشون به چشمه نزدیک شدن گوسفند و دسته دسته سر آب میرفتن و تشته بر میگشتن پسر پادشاه از برگشتن گسفندهی تشنه متعجب شد به چشم نزدیک شد تا علت رو کش کنه دید که کنار چشمه دختری زیبا معصومانه به خواب رفته پسر پادشاه که مهر دختر به دلش نشسته بود یکی از انگوشرای دختر رو برداشت و رفت بالای درخت پنهون شد دختر وقتی از خواب بیدار شد دید که یکی از انگشتراش رو که از انگشتاش درآورده بود و کنار چشم گذاشته بود نیست. با تعجب گفت: وا انگشترم کجاست؟ اینجا که آدمیزاد گذر نکرده. کی انگشترم رو برداشته؟ یه دفعه از بالای درخت انگشترش به پایین افتاد. دختر انگشتر رو برداشت و به انگشت کرد و آروم آروم وارد پوست بزاله سرخ شد. مشک آب رو برداشت و به راه افتاد. پسر پادشاه اونو تعقیب کرد تا به خوننش رسید. بعد به قصر خودش برگشت. از دور صدای هلهله شادی و نواختن ساز و دهل به گوش می رسید. همه در حال پایکوبی بودند چون که جشن عروسی شاهزاده بود. شاهزاده به محض ورود به کاخ به پدرش و ملکه اعلام کرد پدر مادر، من فعلا آمادگی ازدواج ندارم بهتر این جشن رو به هم بزنید. پادشاه و ملکه و وزرای دربار به شدت به اون اعتراض کرد. اما شاهزاده به این اعتراض ها توجهی نکرد و با قاطعیت گفت به هیچ وجه حاضر به این ازدواج نیستم مکه با یه نفر شاه و ملکی با تعجب پرسیدن یه نفر؟ اون چیه پسرم؟ شاهزاده گفت اون بزغالی صبحیه که در این نزدیکی زندگی میکنه همه با شنیدن این حرف با چشمهایی از حدر بیرون زده شروع به پچ پچ کردن که شاهزاده دیوونه شده اقل از سرش پریده که میخواد به یه بزغاله ازدواج کنه ملکی با گریه و زاری گفت آی خدا خدا پسرم پادشاه آیندگی این سرزمین اقل از درش برید پادشاه وزرا و درباریان اندیشمند رو به حضور فراخون که چارهای بیاندیشند حکیمان ماهر رو به قصد دعوت کرد و اعلام کرد شاهزاده دیوانه شده حکیمان گفتند شاهزاده در کمال صحت و سلامت به سر میبره قربان و هیچ نشانی از بیماری و جنون در اون دیده نمیشه خلاصه پادشاه و ملکه اصرار داشتن که شاهزاده تن به ازدواج با دختری از سرزمین دیگه بده ولی شاهزاده یک کلام میگفت یا بوزغاله سرخ یا هیچ کس شاهزاده نظم قصر رو به هم زده و خاطر پادشاه و ملکه رو پریشون کرده بود. اونا هرچی زمین و زمان رو به هم دوختن تا شاهزاده از این خواسته غیرعادی دست برداره توفیقی در کارشون حاصل نشد که نشد. و به ناچار تسلیمی خواسته شاهزاده شدن. گزمه ها به خونه پیرزن رفتن و بزغاله صحف رو از پیرزن خواستن پیرزن هم برخلاف میل قلبیش بزغاله صحف رو به معموران قصد داد و دم بر نیاورد و با ترس و لرز آروم آروم اشک میریخت و آه بر آورد که خدا یا من که دلم رو به این دختر خوش کرده بودم چرا اونو ازم گرفتی؟ بازم باید تنها باشم خلاصه، بزغاله صرف رو به قصر پادشاه بردن، بزغاله توی قصر از این طرف به اون طرف میدوید دوید، دقیقه آروم نداشت، گاهی هم با چشمای اصلی روشن و زیبا و شاخهای تیزش مقابل ملک می ایستاد و اونو تماشا می کرد. در این لحظه ملکه با تنفر هرچی که در دسترسش بود به طرف بزغالی سرخ پرتاب می کرد و گاهی هم با چوب به جون بزغالی بیچاره می افتاد. انگار که قاتل پدرشه. صدای فریاد بزغالی سرخ برای رهایی خودش از دست ملکه در دل سنگ اون اثر نداشت چون ملکه بزغالی سرخ رو عامل بدبختی و بدنامی شاهزاده می دونست و با خودش می گفت این چه بلایی بود که نصیب ما شد خلاصه این بلا از بارون سنگم براشون گرونتر بود و چون کاری نمیتونست بکنه با زدن بزغالی سرخ خودش رو برای لحظه آرون میکنه روز عروسی شاهزاده خانم کشور روم فرا رسیده بود شاه و ملکه و عده از درباریان همراه با خادمان و محافظان برای شرکت در مراسم عروسی راهی کشور روم شدند بزغالی سرخ توی قصد تنها مد بزغالی سرخ میچرخید دیگه ملکه نبود که اونو با چوب بزنه اون میچرخید و گاهی به گوشهی پناه میبرد و بدون حرکت به فکر فرو میرفت و انگار، نخشه یا می کشید. شاید فکر میکرد که چجوری خودش رو از دست شلاغ های ملک نجاک بده؟ شاید هم به شاهزاده فکر میکرد. بزغاله سرخ واردی یکی از اتاقهای قصد شد. از جلد بزغاله بیرون اومد. سوار بر یکی از اسب های تیز رو شد. تاخت و تاخت و تاخت تا خودش رو به عروسی شاهزاده خانم روم برسونه. آروم از اسب پیاده شد. اسب رو به کسی که مسئول نگهداری عصب های مهمان ها بود سپرد و به طرف قصر حرکت کرد. ناشناسی اون برای همه سوال شده بود. دختر وارد تالار شد. جمعیت زیادی با لباس های اونجا بودن. با ورود اون به تالار یه دفعه همه چشم ها به طرفش خیری شد. همه از این همه زیبایی انگوش به دهن موندن. کم کم زمزمه ها بالا گرفت این دختر زیبا کیه؟ از کجا اومده؟ این شهازد خانم کدوم سرزمینه؟ چه نسبتی با پادشاه روم داره؟ خلاصه، هر کسی چیزی میگفت دختر با همون چشمایی اصلی روشن سکوت رو شکست و گفت من از سرزمین دوری نیومدم من از جایی اومدم که منو با چوب میزدن از جای اومدم که راضی نبودن من عروسشون بشم. از جای اومدم که هرچه در دسترسشون بود به طرف من پرتاب میکردن. و خلاصه گفت و گفت و گفت و ملکه با شنیدن این حرف رو یکی خورد و متوجه شد که این دختر زیبا همون بزغاله سرخه که پسر شاهزاده جوون آشقه اونه. بعد با خودش گفت آخ چه اشتباهی کردم، این دختر همون بسخاله سرخه، شازده حق داشت، زمین و زمون رو به هم بدوزه برای وسال اون. و بعد ملکی به درف دختر جوان رفت و اونو در آغوش کشید و بوسید و از اون خواست تا هرچه زودتر به همراه اون و پادشاه به قصر برگردن و جشن عروسی رو برگزار کنه. بله بالاخره جشن ازدواج شاهزاده و بزغالی سرخ یا همون دختر زیبای پیرزن برگزار شد و از تمام اطراف و اکناف ملوکان بزرگان و شاهزادگان رو دعوت کردند و به دستور پادشاه پیرزن هم به قصر آورده شد تا در کنار دخترش زندگی کنه افسانه بختیاری بیگه یا بزغالی سر رو به روایت خانم صدیقی پور بهادوری از ایزه و برگرفته از کتاب افسانه‌های مردم بختیاری به کوشش کتایون لیموچی براتون نقل کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشید قصه و افسانه مثل خوابدیدنه. دیدنه با زندگی، پیوستگی و شباهت داره اما خود زندگی نیست. تلخی و ناملایمات اون رو هم نداره در افسانه ها و قصه ها جذابیتی هست که در همه دورهای عمر از کودکی تا پیری آدم رو به طرف خودش میکشونه و با شنیدن افسانه و قصه نیروی تخیل ما پرورش پیدا کنه و در واقع افسانه ها و قصه ها در تکامل ذهنی ما تأثیر مثبتی دارن هزار افثان کار مشترکی بود از نویسنده و سردبیر زینت سالح بود ویراستار الهام اشجب اجرا مهران دوست، صداوردار منیره قرغانی تایید کننده زهرا عبدالله ساوه تا افسانی دیگر بدرود